آمد بر شیده دادش درود ز شاهوز ایرانیان برفزود جوان نیز بخشاد شیرین زبان که بیدار دل بود و روشن روان. بگفتان که بشنید زفراسی ها از آرام و از بزم و رزم و شتاب. ای آمد شاه ایران بگفت که پیغام ها با خرب بود جفت. بخندید ز کار نیا از آن جستن چاره و کیمیا. از آن پس چنین گفت کفراسی ها پشیمان است از گذشتن ز آب. برا چشم پر آب و لب پرسخون مخصوصی که گریان شده از ترس و گفتار با گفتار بخواد ما رو آران بکنه. برا چشم پر آب و لب پرسخون مرا دل پر از درد خواهی به کوشت که تا دل بپیچاندم به بیشی لشکر بترساندم. نداموند که گردند به چرخ بلند نگردد به است دوزی گذن این نوع چیزی که باید باید انجام میگیره حرکتش در نمیگرده به با, با ورد با با جنگ به هنگام و کوچش نسازم درنگ همه بخردان و ردان و سپاه با آواز گفتن که نیست را جهان دیده پردانش افراسیاب جز از چار نبیند به نداند جز از تنبل و جادویی ترس میانی جادویی فرب و بدندیشی و بدخوی زلشگر کنون شیده را برگزید که آورد مگر بند بد را کلید همی خواهد از شاه ایران نبرد بدان تا کند روز ما را به درد یعنی کشته بشید تو بر تیزی او دلیری مکن از ایران و از تاش سیری مکن او گرشیده از شاه جوید نبرد و آورد گستاخ با او مگرد. به دست تو گرشیده گردت تبا یکی نامور کم شود زان سپاه. او گرد دور گردور از ایدر تو گردی حلاک از ایران برای از اکی تیر خاک. نیای تو پیری جان دیده است. به تو و چین در پسند دیده است. همین پوزش آرد. بدان کار بدین و هلوطور پیشنهاد دادم بدان بدان بد که کرد چون که بعد اشاره به دوره چارگی جست خواهد نبرد من پیشنهاد دادم که چارگی جست خواهد ز درد میخواد که کار بکنه که از درد فرار کنه هزار هران شهر که از مرز ایران نهی، همی کرد خواهد ز توران تهی. به ایران خرامیم، پیروز و شاد، ز کار گذشته نگیریم یاد. همی لب دندان بخوایید شاه، همی کرد خیره به دیشان نگاه، از پس چون گفت که نیست را، به ایران خرامیم از این رازمگاه. شده بر تخت، بر زنده افراسیاب، به جهان گردد از وی خراب. فریبند توری از آن انجامن البته نسخه آمدن ترک هنوز اونجا ترک بود فریبنده توری از آن انجمن یا فریبنده مردی فکر میکنم از آن انجامن بیامد خرامان به نزدیک من گر از من همین جفت خواهد نبرد شما را چرا شد چونین روی زرد همین از شما این شگفت آیدم همون کین پیشین بی افزایدم. یعنی شما که آشتی میخواید من کینم افزاید میشه. این کاری بوده که خسروت در تمام مدت زندگی پادشویش کرد. شو ایرانیان این ها از شاه شنیدند پیچان شدند از گناه. گرفتند پوزش که ما بنده ایم. هم از مهربانی سرفتنده ایم. نخواهد چند شاه جز نیک اوگر کارها را سرانجام اوگر یا کارها را سنجام نیک سطوده جهاندار داور ترمنش نخواهد که بر ما بود سرزنش که گوگند از ایران سواری نبود که یارست باشیده رزمازمود یعنی میگه ما محصولونی که ما جنگ بکنیم باشیده تو جنگ نکن همینجا اصلاح میکنید این محصولی که شما میکنید من دیگه قرار نمیذارم یه چیزی رو حتی در این مقطع هم شما با تماشایش هر چقدر انسان بخونه بزکنه پتیشن چون پاسخواهر که ای بخردان نمایان در راه بدانید که شید روز نبرد پدر را مادار بر خامون به مرد نباشد سلیح شما کارگر بدون جوشن و خود فولاد بر بسوزم بر او تیر جان پدرش چو کابوس را سوخت جان بر پسرش همطور که جان و کابوس سوخت از مرگ پسرش سیاوخش من حالا این اینرو میکشم تا جان تیره پدرش بر او بسوزه ایران و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین بفرمود تا قارن نیکخواه شود باز و پاسخ گزارد ز شاه که این کار ما دیر و دوشخار گشت سخونها ز اندازه اندر گذشت هنر یافته مرد سنگی به جنگ که گهه رعزم چندین درنگ کنون تا خداوند خورشید و ماه که را شاد دارد به این رعزگاه منو شیده بود دشت و شمشیر تز براغرم به فرجام از او رست خز خب باز هم پیامک های شما هست شما برنامه پنجه های رو به محتاب رو می‌شنوید، استاد جنیدی برای ما از شاهنامه میخوانند داستان های شاهنامه رو میخوانند و رمزگوش هم میکنند و به پیامک های شما مشتوانه پاسخ میدم من رو توی این فاصله هی پیامک ها رو آماده که یه جاهایی از دست میدم اینو بگم برای شنوانده دیگه این مثل من بخونم شما رو نگاه میکنم حواسم پرت میشه بعد یه دفعه تیکه تیکه میشتم یه جوری اگه اوایل خیلی میرنجیدم من دارم شهرنمون بخونم شما رو گروه من هستی تو من نگاه میکنی ولی دیدم خود چوری نداری واقعی تلاش برای اینکه این این سوالی درسته مثالی که میگم بعد وقتا یادتون میره آره بعضی وقتا چون واقعا مثلا هم به این گوش ما بشه انگلیسی میشه اما میشنم سعی میکنم ام با خریدی سریم کار انجام بدم که بشه نم. از خوی میکنه. بدون در شما معنی لغات مرد و زن را بفرمایید زمانیان. مرد در عهیستا بوده مریت یعنی در گذشتنی از این واژه واژه مردم ساخته شده که موسوی با انسان از انسان از یه نه یعنی فراموش کرده. اما مرت یعنی در گذشتنی، در باجی کیومرس هست، گای مرتا، یعنی جان میرا، مردم از این گرفته شده. زن در عوستو بود که اینی، یعنی صاحب خانه، کم یعنی خانه، که اینی یعنی صاحب خانه، که اینی تبدیل شده به قن در زبان پهلوی و تبدیل شده به زن در زبان فارسی، زن یعنی صاحب خانه. البته من به خاطر دارم یه استادی بود که اون زمان خیلی مردم دوستش داشتن شخص خوبی بود به نام سعید نفی روانش شد و یک برنامه هایی گذاشته بودن در رادیو مرز های دانش همطور یک باره گفت که همینطور ما الان به نظر مرسید که مرد یعنی شوهر از مردن میاد و زن از زندگی خب نمیشه که همطور خبار خبار خبار. درست مرد از مردن میاد و در وقتی که مردم میشه یعنی زن رو هم شامل میشه میگه مردم یا مردمان زن هم شاملش میشه یعنی همه من در گذشته هستیم اما زن به این ترتیبی کرده هم یعنی صاحب خانه مردم مردم یعنی انسان برابر, برابر با انسان ها مردمان یعنی انسان ها بله, بله, بله, بله مردمان درسته بله. با سلام خدمت استاد جنیدی استاد رامتین یعنی چه علی اکبر زلقی دستور از دستور چقامیش شارب باشه زرکی آقای زرکی ما در دستور زرکی داریم زلقی, زلقی؟, زلقی. رام تین از نام که تازه پدران و مادران ایرانی بر روی فرزند خودشون میذارن اینکه رام رامین داریم رام یعنی خوب آرامش و رامین محصوب به آرامش اما کم کم بعضی نامها رو پدران و مادران گذاشتن بر بنیاد نام پیشین که معنی ندارد این تین یکی از اوناست ولی خوب بالاخره اختراع پدران و مادران رو بر اینکه روی پرزندشون نامی ایرانی بذارم بخش اعظمش ایرانی شاد باشید سلام دو سوال دارم آریایی ها قبل از مهاجرت به ایران کجا ساکن بودند و نام ایران قبل از مهاجرت آریایی ها چه, چه بود؟ این پروسیش شما برای این من چندین بار گفتم این دروق رو إروomial در حقود در جهان پراکندند که آریایان یه جایی دیگه ای بودند و حالا من برای که شما هم بیدار بشید عرض میکنم مغولان به ما تاختن و معلوم بود که از کجا آمدن اسکندر به ما تاختم معلوم بود که از کجا آمدن غزان به ما تاختم معلوم, معلوم بود که از کجا آمدن و عراب به ما تاختم معلوم بود که از کجا آ چطور آریایان جاشون معلوم نیستن؟ من که کجا بودن؟ این دروغ یک اروپایی ها گفتن و خودشون هم درش درموندن بعضا میگن هاشی رود و دانوم و بگن سیبری. بعضا بگن شمال سیبیریه بعضا نمیدونیم کجاست خیر سرزمین آریایان همین ایرانه و هیچ که از بیرون به اینجا ما مهاجرات نکردیم همواره هم نامش آریا و عیر نه یعنی ایران بوده و این افتخار ماست ما روپایان که به ما کینه و دشمنی دارن و بسیار نظر تنگی دارند مثل به ما وقتی که این پدیده های عظیم و عجیب دانش بشری رو در ایران پیدا کردن اما وقت گفتن که پس اینجا یک اقوام دیگه بودن زندگی میکردن به نام آسیاتیک ی آزیانیک اسمم از خودشون چون کردن هیچ نوشته ای ما نداریم و بعد آریان وحشی گفتران اومدن اینجا رو گرفتن همه رو کشتن و نام خودشون رو این سرزمه کشتن به این ترتیب تمام این درخشش های شگفت که در یافته های شناسی دیده میشه ما از ایران گرفته میشه به یک قوم بینامی به نام یا آسیاتیک هم میشه اما خب این دروها دیگه زمانش به پایان رسید و من یک دوستی دارم که متأسفانه بیمار شده به دنبال کارش نمیتونه بگیره آقای دکتر فرحشانی خدا شفاشون بیماریش خیلی سخته امید با امید خدا ولی در کتاب اولش که تحت عنوان دانشنامه کورشان اومده اینها رو ثابت کرده مثلا میگه شما میگید که هزار سال پیش ایران آدیو اومده اینجا این مدرک از مثلا فرض کن مصر که داره میگه که این سرزمین متعلق به ایرانه این مدرک از کدام کشور همه ایرانم ترجمه کرده کار خیلی خیلی بزرگیه مون این کارام به دست جوانان کمتر افتاد چون کم چاپ شد و 2000 تا بیشتر چاپ نشد و مقداریش شد دادن به ذات ارشاد به دست جوانان ایرانی کم رسید اما خب در کتابخانه بنیاد ملی خوبید یعنی نخستینش رو دکتر به من هدیه کرد در کتابخانه بنیاد ملی بوداریم داریم یکم یه بار دیگه بفرمایید اسمش رو تحت عنوان داراس دا معرف کوشان هست و آر... آریایی ها آریایی ها در کجا بودن اون نشونی که همه در اینجا بودن و این نام رو نادرست گفتن این کاری رو که درخشانی کرده البته میگم درخشانی برای که خیلی با هم دوست و برادر است چند سال پیش وقتی کتاب زندگی و ماجرات آریویان من خونده بود به من گفت که من مخام یک کاری بکنم فکر مونید شما همون کار رو بریم بکنیم گفتم که خب شما چه کار میخوای بکنید. گفت من میخوام اعتبار به ایرانی. گفتم نه من این کار رو نمیخوام میکنم چیکار میکنی؟ گفتم میخوام اعتبار روایات ایرانی رو نشون او دیدگاه من اینه دیدگاه بود, دیدگاه بود. دیدگاه مکمل همه اون کتاب هست بر کتاب خانه بنیاد نشون ما داریم میتونن خواهن بیان ببینن از دیدگاه خودش آید درخشانی ای اونا رو گفته اما کاری که من در سندگی ماجعت آریاین کردم همه از دیدگاه ایرانیه به همین دلیل نمیشتنی زندگی و مهاجرات... مهاجرات آیویان از ایران به خارج اتفاق افتاده یعنی اروپا رو بعدا تشکیل دادن یعنی شما میبینید که مهاجرات باید... یعنی این نه که اومدن ایران, اومدن ایران... ایران... اینجا ایران... مثلا گل گو... ایران... ام... ام... ها یعنی فرانسا بیان ایرلند یعنی سرزمین ایران لند یعنی ایران جایگاه ایرلند سکزی هستن از سکوها رفتن پارت اسپانیا از اسپان رفتن و پارتی ها رفتن کشور پرتغال رو تشکیل دادن اینا همه ایرانی هستن منطقه فرزند بد و بداموز نسبت خودش از مادر و از پدر خیردمند قطع میکنه و اونا نمیخوان بگن که ما اه... یعنی در حقیقت ایرانی هستیم میخوان نفی بکنن چون همه همواره از زمانی که اسکندر گوجستک اومد و همه رهاورت های فرهنگی ایران رو از بین برد و لکه نمگی در تاریخ برای خودش بارو گذاشت اونا مرتبا در برابر عظمت ایران سرشکسته هستن تا مرتبا میخوان که کار بکنن که بگن نه ایران نبودم ما ایرانی نیستیم اما خرشید جهانتاب برامد انقدر این اون ایران که تا اینکه پاسخ همه اونها باشه و با سلام به شما استاذ بزرگ استاد بزرگ پارسی استاد جنیدی در خبرها آمده ورشه باستانی ایران ورشه زورخانی از طرف یونسکو ثبت جهانی شد شاهین از سپاهان پیروز سپاهان پیروز باشید شاد باشید البته من زیاد برای یونسکو اعتباری قائل نیستم چون اونها بالاخره زیر نفوذ همون فرهنگه است و ولی خب این متعلق به نیاکوان ماست زمان فریدونه و ما با این برزش ایران رو نجات دادیم و سباقه شش هزار ساله داره پرجمه آیا مزراب سنتور را فردوسی ساخت و طراحی کرد چاد و پیروز امین از سوهان فردوسی با قلم خودش کهکشان ها رو طراحی کرد در شاهنامه شما چطور چنین سوهانی رو میگه؟ نه نه منظورشون پکر باید در مورد در زبان پارسی بوده چنگ تور یعنی چنگ رو تورانیان خوابوندن روی یک جعبه و سنتور ساخته شد. سنتور توان سازه ایرانی رو نداره باید کوکش بکنن تا بتونن از یه دستگاه به دستگاه دیگه برن و جالب اینه که پانتاله اون نامی در اروپا تا سنتور رو کنار رو هم گذاشت و پیانو رو ساخت و ما سازی داشتیم به نام شهروت که درست و اندازه گام های پیانو هزار سال پیش این, ش... این ساز دیگه از دست رفت شکلش و گفتارش بر در... ها هست که من اون رو در کتاب زمین شناخته موسیقی ایرانی آوردم میتونید ملازم بفرمید نه سنتور فردوسی با قلمش کهکشانها رو نوشت. اما پور فردوسی پاک زاد جمیدی فریدون فرخ نژاد در ایران بر تو بادا درود تو را تا ابد ایرانیان زیرانیان زیرانیان بر تو بادا درود تو را تا ابد میباید ستود که شهنامه را خوش بیاراستی ز هر کژی آن را بپیراستی بدین رنج فردوسیت شادمان نمودی بدین رنج فردوسیت بدین رنج فردوسیت شادمان فردوسی. شاد نمودی نامت چونو جاودان یامشین باشین باشی. من از قلات شیراز. <تصفيق> <تصفيق> شاد باشیم. سپاسگزارم به آخر یه روزی ملت ایران باید با بشه که چه کار شده می گه باشه یتون بشه. شما برنامه پنجره‌های رو به را رو زمان زیادی نداریم. تلفن هم آماده هستش. البته من فکر کنم تا همینجا استاد میشه داستان رو داشت یا ادامه. بله برای که بعداً نبرد شیده بگه خوشبخور. تلفون ها آماده هست با امید خدا میشنویم قبل از اون موسیقی بشنویم باز در خدمت شما خواهیم بود استاد جنیدی ببخشید بزرگوار قصدم از طرح سوالی که میخوام بپرسم این نیست که حقیر با گرایی مخالفت دارم من شیفته این هستم که بدانم ایرانیان باستان چگونه سخن میگفتند اما همینطور که من در کویش شما در بیان اشعار شاهنامه دقیق کردم شما الفاظی رو مثل مثلا شعر به جای گفتن شی به جای برای گفتن خور خور مثلا میفرمایید لبسی که باید باشه و درسته خب اما همینطور که این الفاظ در زمان باستان معنوس بوده برای مردم شنیدنش الان نامعنوسه الان زبان گفتاری ما گونه‌ای است که الان هر دارم ا ز ماتوراث میکنم و همه میدانیم فکر نمیکنید این یه مقداری دشوار باشه آیا بایستی ما تکلیف خودم رو دارم به عنوان یک شاگرد از شما که استاد ما هستید سوال میکنم برای اینکه به فرزندم چگونه انتقال بدم آیا ما باید این لهجهمون رو تغییر بدیم لفظمون رو تغییر بدیم به اون زبان یا نه صرفا به خاطر خواندن شاهنامه باید این گونه بگیم اگر ممکنه بگیم بار باری برچه از زبان تغییر کرده شده اینی که الان هست تکلیف رو معلوم به که آیا باید تغییر پیدا کنه به اون زمان یا نه ما مثلا میتونیم همین خور مثلا بگیم یا شیر بگیم و این مسائل این چلنی. ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید فنگاری هستم از نوشهر مازن اران مزایم شدم حق میگه شما باید درود بر شما باید باجه شیر دو گونه است یکی شیری که ما میخوریم و شیر خونده میشه و یکی شیر که جانور درنده هست با جانوران در آذربایجان، در کردستان در لرستان، بین لکا در خراسان در سیستان بلوچستان همه جا این شیر خونده میشه و ما بهترین که زبان رو بیاراییم و بپیراییم اگر ما شیر خراکی رو با شیر جانور یکشان بخونیم کار درستی نکردیم ما در حقیقت توانایی زبان و فاصیلی به این ترتیب کم داریم میکنیم واژه ها رو به هم نزیب کنیم و این درست نیست اما واجه مثل خوهر این وقتی که در پساوا میاد من به جای قافیه خالق مطلق گذش پس من من پیشنات میکنم پساوا در پساوا میاد ما ناچاریم خوهر بخونیم مثلا فرض کنیم که این در یه لطف امداد خور در لطف پسین اومده مثلا بر ما چطور اینجور خور بخونیم اونو بر بخونیم چاره این نیست اینا در پس‌آوان ناچاریم که راحت بکنیم ولی واجهی مثل شیر درست بوده بدونیم که شیر با شیر فرم میکنه این همونیه سخنی که مولوی میگه که یکی شیری است کادم بیخورد آن دیگر شیری است کادم این شیری که آدم میشه یکی شیری چیریست اندر بادیه و اون دیگر شیریست اندر بادیه این بوده دیگه باید ما اینا رو راحت بکنیم تا زبانمونو رو همطور که بوده درست بوده یعنی این کلام رو بر زبان بیاریم اما در باره ها اون وقتی که میشه ها میشه خور در حال عادی بین کلام هاگه باشه اونو رو باید خورخون مثلا خورشید درسته خورشت بوده در فارسی خورشت درسته اما اگر بین کلام بیاد ما این خوششید میخونیم این مخور میشه به پس و پرسیدن با درود علت شکست جمشید از زهرک در شاهنامه چه بوده؟ با سپاس خسروی از شیراست جمشید نسبت به خداوند و نسبت به مردمان بادکمان شد تکبر ورزید خداوند مهره از او گرفت کسی که به مردمان زیر وضع خودش تکبر میوزه باید شکست بوره برد پرسیدن که لطفاً لطفاً کنید. از استاد بپرسید فرق پادشاه با شاه چی؟ این واجه در در کوهن یعنی پاسی باستان عوستا بوده پای پایی تی خشفره خشفره یعنی شهر یعنی کشور پایتی یعنی کسی که اون کشور رو میپاید نه اینکه کسی که کشور رو زیر سلطه خودش میگیره بلکه کسی که کشور رو میپاید یعنی خدمتگزار مردم هست این در گفتار سردیه اومده که, که چوپان برای برای رمه است نه رو رمه برای چوپان این همون مفهوم پاییتی خشتره هست کم کم تبدیل میشه به پادشاه و بعدم خلاصه میشه میشه شاه. با سلام از استاد بپرسید ارتباط کلمه دختر باداتر چیست باداتر دل... بله اه... که در لکی در وقتیاری در دل... گویند مریم احمدی از خورم آباد درود بر شما شهر خورم آباد این واژه در مبستا بوده دوغور در سانسکریت بوده دوهی تره دوهی تره دوهی یعنی شیر دوهی تره پسند آمه که فایلسازه یعنی کسی که به کارهای شیر می پروزه. با این که این به اسطلاح اصلاحات عرضی در حقیقت تخریب ارز خیلی خیانت کرد به شیوه زندگی مردم و روسته ها رو پراکنده کرد اما هنوز می بینید در روسته ها کار شیر متعلق به بانوان و دخترانه و کار بزرگ وظیمی که استاد مرسا فرهادی کرده درباره واره که گونه از تعاونی زنانه ایرانی است که چطور شیر در واره ها تقسیم میشه چند هزار سال سابقه داشته و هم تا پیشتر از این به اصطلاح اصلاحات ارضی در ایران بود و خوشبختانه این مرد بزرگ بزرگوار همه این انواع واره رو در سرتاسر ایران فرنگی گرد کرد دو هیتر یعنی کسی که دوشانده شیره بعد در پهلوی شد, شد در فارسی شد در پهلوی شد همیشه پسپند فعال سازه بعد در در انگلیسی داتر بعد در گیلانی در گی در گی و در تبرستان دت میگن دوت میگن همه اینا امتا دیگه این چیز شده خلاصه شده است. خود واژه دختر تقریبا دو وقت رو یعنی دو و تر رو داره اما دیگه که دت و دوت اینا گفته میشه دیگه خلاصه شده بله. با درود خواهش درباره در باره آین خانی توضیح دهید کیانا. خب وقتی که سیاووش کشته شد بعد به ایرانیان حرکت کردن به طرف سوران که ما خوندیم بعد هر سال به هنگام خودش این آین رو نشون می و اگر شما دست رو در نظر بگیرید می بینید که در حقیق گروهی که دارن به جنگ می رن دارم دارن دارم در عقبت درفت دارن که همین میشه این علامتی که همراه میبرن و اینا آین حرکت ایرانیان به سوتوران رو زنده نگه داشتن و نرشخی در تاریخ بخارا میگه که بخاراییان رو به هنگام خود همواره در سوب سیاهاش آین هایی باشد که به هنگام خود اینا رو به هنجام میرسونن اما موقعی که بیلمیان بر بخش عظیمی از کشور مسلط شدن اینها چون شیعه بودن این آیین رو منتقل کردن به امام حسین اون وقت تاریخش از دست رفت برای که وقتی که با ماهای قمری همراه شد اون تاریخی که در بخارا بوده ما اون رو دیگه نمیدونیم که واقعا چه وقت بوده اما با همین ترتیب نگهبانی شد برای بزرداشت امام حسین چه خیلی امشب چون تو پیانه کانشون رو هم میخونم بسیاری از هم خانواده ها با هم برومه رو دارن میشتوند همسران با هم دیگه میشتوند و کسانی که قرار ازدواج کنن یه نامزد هستن و گفتم که حالا تو پرامک کنه بود که اصلا من با نامزدم پرامک به هم میزنیم میگیم قرار ماساعت یک شنبها قرار ماساعت نهونی میشه بنیامه تندروهای رو به که خیلی خوبه. بیشترین کاره. یه ایجوم کلاس رو میذم و یه سوال دیگه ام سلام. ازت دادید اسم نام من کیان فر است. من رو میخواستم. از خوراهم بود. فر کیان؟ از این بیتر؟ کیان فرق دیگه فر کیان؟ پدرشونه کیانی؟ هیچ ها رو بیش دردان عشق و محبت و ایل پیام دهندگان درد و رنج و مهند درود فرابان بر شما تخم معنا کش فردوسی نظامی آب دار زعدیش خرمن نهاد و حافظش بر باد از استاد فرزانه جناب آقای جنیدی تقاضا دارم به تیلا که خوانده شد معنی کرده و درباره عبارت حافظش بر باد داد دیشتر توضیح ده هم. شاد و پیروز باشید مجید ریاست نگیادن هستم از نشر کرد متشکرم کسانی که با بر با مهشر وقتی که گندوم رو میکشند و خرمن میکردند و خرمن رو میکوبیدند بعدا کاها و دانه ها با همدیگه همراه بودند یکی وسیلی بود به نوم چارشاخ و هنگامی که باد میوزید با این دانه ها و کاه رو با هم دیگه به یک شیبه خیلی زیبایی میریختن رو هوا باد میمد که رو یک از دو از اون طرف تر روزه میریخت دوناها پایین میریختن برباد دادن محصول اینه یعنی که دانه رو از از, از کاه از که تدا کنن پسیدن گویش زبانه گویش زابولی چه از داره؟ گویش زابولی مثل گویش کابلی مثل گویش همه جای ایران قدمتشون میخوره به ریشه زبانهای آریایی چند هزار سال پیش من چند بار گفتم که اینا یه خورده اگر تغییر شکل پیدا میکنن همانند همون شاخهای یک درخت چند هزار سال هستن که اندکی تغییر در هر کدوم دیده میشه ولی ریشه و جانشون و پایه و زندگانشون همون درخت کوهنه یعنی زبان ایرانی با سلام از استاد نپرسید واجهی لولی چه معناست لوری به معنی این کسانی بودن که لوری و لولی به هر دو صورت اومده کسانی بودن که میرفتن در روستاها ها و رامشگری میکردن و زندگیشون از این محل تأمین می‌شد. که کولی cool. هم گفته شده و نام های خیلی زیادی هم در دنیا به اینها داده شده مثلا روما داده شده چیگان داده شده در زبان ارمنی نام های فراوان دارن ده. تو پرم های شما پر های زیادی هست که میخواد سوال داشته باشید از است ارت داشته باشید چگونه ات ملاقات کنیم و شماره بلاد نشان را رو پرسیدید. این شماره دورواژ یا همون تلفن 8 96 27 شش هست، 8 96 27 ۶ چهار دورنگار هم یا همون فکس هشتاد و هشت نود و شش بیست و دو, دو چهل و سه هشتاد و هشت نود و شش بیست دو, دو، چهل و سه تلفن بعدی رو میشنویم من فرزاد روزبهانی از بروجه باستم ببینم معنی اسم من فرزاد به چه معنیه و آیا توی داستانهای افرادی ایران کسی به این نام وجود داشته یا و پهلوانه سمت اوتان لرستان چی بوده ممنوع با رود بر شما و لرستان قهرمان لرستانو بختیاریو کوکیلیو لاکو اینو همه گیو فرزند گودرز جان پهلوان بوده و فرزاد هم یک نامیش اگر بخوایم به صورت به ایرانی معنی کنیم فر زاد زاده شده یعنی چیزی که میخواد به جهان بیاد فرزاد فر پیشوندیه که حرکت رو به سوی آینده نشون میده اما در نویشته های باستانی ما نام فرزاد نداریم. این نام هم مثل همون رامتین که قبلا گفتم. این نام کم کم پیدا شده در فرهنگ نام های ایرانی. سلام خدمت استاد جنیدی. لطفا درباره اعداد و شکل نویشتاری اونها در باستان توضیح دهید. عباس گیلانی. درود بر شما. و تمام نوشته‌های های ایران که به هم ریخت ما نویشته های ریاضی در دست نداریم اما در خط پهلوی گونه از نوشته از عداد هست که تقریبا یک رو اگر شما سر یک رو بنویسید و بعد به صورت ب درست کنید این میشه یه ایوک یعنی یک دو همین دو تا دندونه مثل همین دوی امروز بدید بعد باز به این طرف درست کنید سه همین طور بنابراده نشون داده میشه که این اعدادی که امروز ما داریم در زبان فارسی از همون اعداد زبان پهلوی گرفته شده و تا ده همینطور مرتبا اضافه میشه. وقتی که به ده رسید یه مثل دمانند می نویسیم کش مییم به طرف چپ این میشه ده وقتی که به 20 بریم که 20ست بوده یه دونه میتونیم ب مثل لام مثل ل. زیرش ساخت میشه به طرف چپ دیگه بیشتر از این نمیتونم شکلها رو شهر بدن در خط پرلوی بوده که الان هم هست میشه میداخت با به ایرانیان فریخته استاد جنیدی و گوینده گرامی برنامه هدایتی استاد بفرمه آیا معنی نام هشتراک که نام روستایی در بخش شاپور شهرستان خوی میباشد روشن است؟ تندرست و شادکان باشید ایدون باد شاهروخ شاهنواز تهران شاد باشید درباره نام ها من یک گفتار خیلی مفصل نوشتم پیرامون جستار پیرامون بازی کرمان و بر اونجا خوشدار دادم به اینکه که نباید به ظاهر نام توجه کرد مثلا فرض کنید که تبریز رو اگر بخوایم به صورت آمیانه معنی کنیم میشه که تبریخت شد و داستانم آوردن که یه دختری از دختران هارون رشید اومد اونجا تب داشت و تبش ریخت خب اگر اینطور طور باشه در تبریز و اون دیار زیبا نباید که ثبت داشته باشه و این یا مثلا ارده بیل که ما با بیل ارده بردیم یعنی شهر ارد یعنی شهر عشابه ایش تو که در اردستان هست در اردکان هست در اردلان هست همه اینا هست این به ارده ارتباط نداره و این هم باید دقت کرد نمونهاشو پیدا کرد و همون اساسا مودین هشتر در مثلا هشتر خانم هست این هشتر ممکنه که نمونه دیگه از, از, از, از باشه در است استراواد مونتو من درباره این نامها شتاب به خشم بله از استاد بخواید کمی در مورد محله ای به نام دیگه رستم در بین راه کرمان به مشهد نزدی بله دیگه رستم من متاسفانه اونجا نرفتم و مونتو ها هر جوی چیز خیلی بزرگی باشه اون رو برستم نسبت میدم من به یاد دارم وقتی که دنبال آتشکده بورنین مهر بودم در شمال غربی نیشابور از دور دیدم که یک سنگی داخل رشت افتاده و این سنگ بزرگ رو به هیچ وجه نمیشه گفت که سیل آورده باشه یا بر اثر زمین لرزه از کوهی لغزیده باشه یه چیزی خیلی شگفت بود و وقتی که به نزدیکیش رفتیم چندتا از روستاییان اطراف اومدن که این دیدن ما داریم به سعی نگاه میکنیم که این, این چه پدیده شگفتیه اونو پیاده شدن و فکر کردن که خب ما محلی نیستیم یعنی از اومدیم و باید به با ما شهر بدن خب من هر وقت که میرم به رسته های بود یه جاهایی که مثل دامغان یا مشهد یا هر جا که زبون رو بردم به زبون خودشون صحبت کنم بعد من حالا همون زبون رو یعنی زبان رستاییان نشوه رو به کار میگیرم در این مورد که گفتن،, گفتن که آقا چه خرمانه من گفتم که ما باره همی سنگ نگامانه مگرن همی سنگ چیه ای اینها ما گفتن با همه آقای سنگ فلخمون رستم ها پلخمون میگه فلاخون اون که بچه ها بادود تیر کمون دیگه این رستم کیه کی سنگ فلخمون در لورستان یه جا هستیش که دخمه میخواستم بسازن دوازده تا چهارده متر دو پایه بره شکل آخر اسبه اونا میگن که اینجا آخر رخش بوده و رستم رخش رو اینجا مجازات کرد هزار زار به زد رخش یک شهر یک شهر که شه در شهر چین شنیدم شهر رو هر چیز بزرگی که پیدا کنن این رو به نیاکان میدیند نیاکانشون بزرگ بودن اما فکر نمی کن که این خرد نیاکان بزرگ بوده. فکر می همین چیزا بزرگ بوده. حتما اونجا هم یه چیز نظیر این بیگ بوده باشه که گفته روشم دیگه روستم. سپاسگزارم از شما استاد عزیز. همتون خوش، سلامت باشید. روزمر سلام. بله, بله پایان میشناسید. خیلی از پیامک های شما اومده بود که تعریف کردید، دوست کردید. یه پیامک که واسه سلام و ایموجی صدا رحمتنا که لطفاً بخونید. خدا نگهدار. بس شما نکنه. یاد بگیر بخود ما ادوارش بخود. تالی کوه نیران و آقای دری علی طاهری و نورالله نورالله حیدری همایگی پخت کاذمی واسمی همایگی برنامه سهراب ستایشمنش ارتباطات آقای حسین چگینی زاده من هم همینطور زهرا هدایتی شب خوش بر شما مردمان ایران خداحافظ